ششومین عادت زده تنبلی. فهرست بازبینی بحانه که از میان می رود باید اول فلان کار را انجام دهم گاهی شما کاری که قبلاً صدها بار هم انجام داده اید را به طویق می اندازید علت این امر هم نداشتن پروسه دائمی برای انجام این کارها است راه حل این مشکل هم ایجاد یک نظام برای انجام تمام کارهای چند ای در زندگی شماست. همبرگرهای مکدونالد در این باره مثال خوبی هستند. مکدونالد همبرگرهای بیکیفیتی درست می کند و کیفیت سایر غذاهایش هم بد است. دلیل آنکه مکدونالد امپراتور فود جهان است آن است که آنها از یک نظام برای تمام ابعاد عملیاتی روزانهشان استفاده میکنند. آنها برای سیب زمینی سرخ کردن یک پروسه دارند، برای همبرگر درست کردن یک پروسه دارند و برای گرفتن سفارش هم یک پروسه دیگر دارند. احتمالش هست که برای تمیز کردن توالت‌هایشان هم یک نظام جداگانه داشته باشند. مکدونال جایی برای شک و تعمل باقی نمی‌گذارد. آنها به هر یک از کارکنانشان دستورالعمل‌های پرجزئیات اما قابل اجرایی می‌دهند. و تمام کاری که این افراد لازم است بکنند این است که این فهرست بازبینی را دنبال کنند تا کارشان را عالی انجام داده باشند. حتی اگر از طعم همبرگرهای مکدونالد خوشتان نمیآید از این مثال می توانید چیزهای فراوانی بیاموزید. اگر شما هم کار خاصی را به طور مرتب انجام می دهید لازم است کارتان را به یک فهرست بازبینی گام به گام تبدیل کنید. نظامند کردن یک پروسه کار آسانی است، کافیست یک روز چند ساعت وقت کنار بگذارید و آنچه به صورت هفتگی انجام میدهید را تحلیل کنید. کارهایی که به داشتن یک پروسه چند مرحله‌ای نیازمند هستند را شناسایی کنید. مثلا زدن به پست الکترونیکیتان هر چند است که باید روزانه انجام بدهید، اما به چونین پروسه‌ای نیاز ندارد. برعکس، ارائه گزارش ماهانه از کارتان حتما نیازمند یک پروسه چند مرحله‌ای است. وقتی تمام پروسه ها را شناسایی کردید، آنها را به نظام هایی گام به گام تبدیل کنید. این کار به مانند نوشتن یک فهرست پروژه است که انجامش را در پنجمین فعالیت ضد تنبلی آموختیم. در اینجا هم هر یک از موارد فهرست شما به یک نقشه عملیاتی نیاز دارد. نصیحت من است که این کار را برای تمام ابعاد زندگیتان، از امور مالی و کارهای خانه گرفته تا آماده شدن برای تعطیلات یا برنامه ریزی برای جشن تولد فرزندتان انجام دهید. شما با ساختن چنین نظامی یک طرح کلی برای انجام کارهایتان خواهید داشت که میتواند برای هر کار خاصی مورد استفاده مجدد قرار بگیرد. مثال فرض کنید از شما خواستن هر هفته یک جلسه توجیهی پانزده دقیقهی در محل کارتان برگزار کنید. فهرست بازبینی گام به گام آنچه باید انجام دهید به این قرار است: یک، طرح کلی آنچه در جلسه توجیهی دربارهاش سخن خواهید گفت را مشخص کنید. دو، با افرادی که در این جلسه حضور خواهند داشت درباره موانع و چالش‌های رویشان صحبت کنید. سه، اطلاعات و آمار مربوطه را جمع آوری کنید. چهار، اطلاعاتتان را با نظمی منطقی سازماندهی کنید پنج پیشنویسی از سخنرانیتان آماده کنید شش از اعضای تیمتان بازخورد بگیرید و نظرشان را جویا شوید هفت نسخه های دوم، سوم و نهایی سخنرانیتان را بنویسید هشت آنقدر سخنرانیتان را تمرین کنید تا بتوانید آن را به راحتی ارائه دهید. نه، جلسه را برگزار کنید. با توجه به این مثال برای هر کاری که می کنید یک پروسه ترتیب دهید تا همیشه نقشه عملیاتی دقیقی برای آغاز پروژه های روتین داشته باشید. اجرای این عادت نوشتن فهرست بازبینی برای پروسه های چند ای و روتین کارهایتان کار سختی نیست. در حقیقت این عادت را هم می توانید به راحتی عادت تعریف پروژه ها که در فصل قبل بدان پرداختیم در خود پرورش دهید. 1. دفترچه ای را که فهرست پروژه هایتان را در یادداشت می کنید بردارید. 2. یک صفحه از آن را به یک پروسه روتین اختصاص دهید. 3. قدم عملیاتی که باید دنبال کنید را یادداشت کنید 4. هرگاه که لازم شد کار روتینی را انجام دهید این پروسه های گام به گام را دنبال کنید 5. به دنبال راه‌هایی برای بروز کردن و پیشرفت دادن پروسه هایتان باشید نوشتن فهرست بازبینی شاید به نظر یک کار اضافی و بیهوده برسد و حتی ایدی برانند که این عمل خود باعث به تعویق افتادن کارهای شما می شود اما به نظر من عکس این مسئله صحیح است داشتن یک فهرست بازبینی گام به گام برای کارهای روتین باعث می شود انجام آنها تا حد بسیار زیادی ساده شود دیگر لازم نیست به حدس و گمان زنی بپردازید و تنها کاری که باید انجام دهید این است که این قدم ها را مو به مو دنبال کنید